سهرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد قدهی در کشو سرخوش به تماشا به خرام. تا ببینی که نگارت به چه آین آمد مجدگانی به دهی خلوتی نافگوشای که زه سهرای خوتن آهوی مشکین آمد. گریه آبی به رخ سوختگان بازاور. ناله فریاد رسه آشق مسکین آمد. مرق دل باز هوادار کمان ابرویست. ای کبوتر نگران باش که شاقین آمد. ساغی می بده و مخور از دشمن و دوست که به کام دل ما آن بشد و این آمد رسم بد اهدی ایام شدی دبر بهار گریش بر سمن و سنبول و نسلین آمد چون سبا گفته حافظ بشنید از بلبل انبرفشان به تماشای ریاهین آمد